به حال حطاییرین و آخرین و محصومین و درست داریمت و هم داریمت شده الله مغفر مقدمات و از تصوری بخش مطلب و محیل چون مسئله حساسی مطلب و مقایین حمد مطلب و مقیده. یکی از مقابلس مقدماتیش بیان مقدمات حکمت حرد شد که مخدمات حکمت با این نحنی که الان در کتب و اصول ما شده من در بودرمای اصولی نحن سنت ندرم شادم برایی گفتن من منطبت و در کلمات در کلمات فصلین متأخر ما شیمیش متأخر مشکو سه تا مقدمه به عنوان مقدمه کلی که من برای اسطوره اعلام مقدمه اول اینکه متکلم در مقام بیان باشه مقدمه دوم اینکه قرینه نباشه مقدمه سوم ان متخادران در مقام خطاب و تخاطب نباشه این تقریبا مشهوره که هست شد که در نیسل کتاب کفاره ماماده بعد ازیشون هم مثل محومه محققه عراقی عبوی کرد محومه نایمی در نقضی مقدمات حکمت و سه تا با تقریب دیگری اولی اول که باید ممکن باشه تا اطلاق هست بکنم دوم که در مقام بیان باشه و سبون این که قرینه ای نماشه البس اون که تقییب بادمون میشه باشه می در حیرت خود اطلاق و ثبیت احس شده او رو حقیبا حس کردن شده مقدمان دوتا یکی این که در مقام بیان باشه یکی این که قرینه باشه اون سبونی رو حسی از شد مردم آقای برو جردی تو هرانتر که من نتیجه از مال اختلاف عمره. اون مسئله که قریم نباشه که خب جای بحث نیست که قرینه اون دیگه چه صوری نیست. بس مقدمات یکنکیه چون هم مسئله در مقام بیان باشه. اینطوری که در مقام و این چند تا شد. این مجموعه چهار مrandn خود در اخذ اصلاح ما اصلا این یواشه ها شروع کنیم شهر دادن و روشن شدن و سر این در این مثلا سال هزار سال, سال مثلا که علمای اسلام مسائل رو مطرح کردن تمسط کردن اندهی به کتاب تمسط نکردن به کتاب یه مقدار در واقع ریشه در نجاز روشه یه هم از سکر مثلا زیاد به اطلاعات کتاب هم از سکر خلاف شیه یه مقضاق میشهشون اینجا لرمیگرده که این مشارع باید روشن بشه این برخوردی که حسولین و علمای اسلام با سهوت اطلاع و با موارد اطلاع کردن انشالله واضح بشه از شد که مقدمه اول که مشهور از ها یه مقدار گفتیم اول کلمات این آیون شد دید برد داریم توی تنقیق قدوم ازد. از هم شد که در بازه مقدمی اول خب این آیون آیون تأخر ما اتفاق نظر داریم که باید متکلم در مقام بیان باشه و در یک اصطلاح در مقابل مقام بیان مقام احمال و اجمال یعنی متکلم در مقام احمال و یا اجمال نباشه اهمال عبارت از این است که ناظر به اصل مطلب باشه اجمال هم این است که نه ناظر به این باشه که مطلب رو بیان نکنه افقاق بکنه یعنی اصلا قصد بر این است که مطلب بیان نشه درگیره یک صورت اجمالی گفته بشه و فروع مطلب و فروز مسئله و واقع مسئله روشن نشه احمال نه اصلا نظر داره و نظرش در حصل هر هست که در بابه پنچه خجیت زخور تقریبا دو معنای رئیسی وجود داره یکی معنای کسانی که خجیت زخور رو بلاحاد کشف از مراد واقعی متکلم میدونن مثلا میگه آب بیا آخ و بیا با و یاد اینا کاشفر از این هستن که مراد متکلم واقعی مراقب از واقعی متکلیم آوردن این شیء معیره الزام طرف و آوردن این شیء معیره آفیان نهنشیم مقنی دوبون این است که نه ما در بابا بود جیه از وقت کنم روز دیم دارم اون اساسی. ما به همون مقداری که لفظ ظهور و به اطلاع درارت داره می میکنیم که از شدهایی تربیر به میسار و اخلایی اینو میسار اینو ظهوراتی در خود لفظ منحفت میشه ما دیگه کار نداریم به مراد جبی متکلم و مراد واقعی متکلم و دنبال کشف مراد واقعی متکلم هم نیستیم همینگو گفت آه آه مخموم عروفیش باقیه بیارم مخموم عروفیش همین ما دنبال هم میگه داریم بس که اون روز بذاشته مثلا اون معنای اول یه نظر به این مبناه چون مبناه مخمومه مثلا مثل, مثل کفایی همه از که ظالم مبنی مستادم باشه یه مضای روی این مبنی ها توضیح ها که بدید برده روی مبنی هم روی این مبنی توضیحش اینه چون وقتی می را آب بیار و شکل می تمام افراده آب یعنی ماهیت آب شده یا یک سی ماهیت یه آب و اگر متکلم در محام بیان بود در این پیت در این صورت و در این مقام هست که خصوصیات رو بیان بکنه اونچه که دخیل در مطلوبش آب سرد میخواد دیگه آب سر. پس تو میخاست خودش بخوره آب سرد میخواد میخا باش چای درست بکنه آب جوش میخواد مقاصد فرق میکنه میخاد باش یه رنگی رنگي شده پاک کنه آب مطلقا میخواد سرد باشه گرم باشه پس گای آب گرم میخواد ای آب سرد میخواد ای آب جوش میخواد چون این انقسامات طبیعییه ما اینجور میگم اگر متکلم در مقام بیان بود اونجا میتونیم بگیم که نظرش به ماهیت و ماهیتونی از هیچه غیر دخالت نداره اما اگر تو مقام بیان نبود نمیتونیم کشف بکنیم که این اصلاح مراد جدی بود اونجا دیگه ما باید تغییر داشته باشیم که اطلاق تمام مراد جدیه اوست تمام مراد واقعی اوست که این دوشنی به رسوات که در مقام باشد مخواد توضیح بده چونه افراغ در این بوده یه قدر عدم تقلیل که آن که مثلا, م... مثلا, م... مثلا, مثلا عدم این عدم رو محدود کردن این باید یه شاهدی بیاد چون غیبه رو به الله وقت میگیم اگر در این قرینه حالی این قرینه سیافی آبو تقلیلی قرینه حالی اگر بود این قرینه حالی کافی این قرینه حالی مراد خودش رو مراد واقعی خودش رو بیان بکنه اگر در سر بیان مراد تمام مراد واقعی خودشه. و قیدا واضح امکان داره شده باشد اما از وقت قیل نظر به زمینه آبی آب زمین آبیار به زمینه این قریبه حالی نشون میده که ماهیت آب این تمام مراد واقعی اوست اما اگه تو مقام احمال باشی این تمام مراد واقعی نیست این فرضش اینه. یعنی مقام اجمال یعنی اینکه باعث ترجیحش اصلا هدفش اینه که مراد تمام مراد واقعی بیان نشه. اجمال این رو داره. داره در نظر قرار مثلا به شرط شری بشه. در نظر داره که تمام مراد واقعی بیان نشه. اما تو اهمال نظر نداره تمام مراد واقعی بیان نشه. نظر داره که مراد اجمال یعنی اصل مراد روشن بشه. در اجمالی در اهمالی وجود. پس اگر بخوایم با عدب تقیی در بیاریم که ماهیت یعنی هیسوهیهیه این موضوع است و به هر فردی که یعنی به هر نهره که باشه این موضوع رو ککمه این محتیست برای اینکه اینه احناس بکنیم باید قرنه عامه اون قرنه عامم هم, هم, هم همینه که در معام بیان باشی که شده شده این خلاصه این نظر خب از تو استاد همه این مدر فرمونه از مثال شرعی زدن مثل آیه الی الذین و علی الصلاة مثلا یه مثال عرفی هم زدن که قول طبیب اشاره دوا ایشو میگن اگر طبیب به مریض گفت اشاره دوا اینم تو مقام به اصطلاح ماقا اهماله یعنی در مقام بیان نیست نمیخواد بگه دوا یعنی مثلا ما بگیم این آیه طبیب گفت اشاره دوا ما هر دعایی رو می‌گویند خود واظب و گذرات چی بود اطلاق دا کلامش اشاره دوا اطلاق اشراف دوا اطلاق نداره این قول طبیل این اطلاق نداره این اهمال داره این به این مناسبت که انسانی که مریضه دارو بباره انسان بیمار دارو بفاره این فقط اما اینکه که بیمین اطلاق داره همه جور انواع دوا سرد و باقدر یک گل خریمی یا چرد و گرم و تو ترا انواع تذبیجات انواع, انواع دواهایی که هیوانی، نواسی، سبیار یا داروها رو مطرح میکنه بگید که چرا گفت که اشتار دوار مثلا یا استعمار دوار یا دارو بکن دارو به استعمار کن ایشون میفرمه که این قول طریق هم در مقام بیان نیز ولی زا تمسط به اطلاق اشتار دواری که طبیب میگه نمیتونی بکن اصلا که این به کلی یک نقطه رو در نظر داشته باشیم بخصهایی که ما در اینجا ازا مهده داریم در جاهایی که عوامل مبلمی باشه بحث ما اران در عوامل نیست. باشه که طبیب و امثال طبیب صادر میکنن نه ارشادی هست شکلشون شکل هم سیقه افعله لیکن مفادشون و رابعشون اینا عوامل ارشادی هست و تأثیری در بحث ما ندارن یعنی جای بحث نیست یعنی عبردن مثال دوا تو این بحث رو نیست البته نه اصلا که سر مطلب این است که حالا اون فارد اساسیش چون گایی و گا ساله که دو سال ما چند ماه یه گفتیم فارغ اساسیش این است که هر وقت امر به نحوی بود که تحلف خود امر اسیان خود امر کیفه داشته باشه میشه که مقلب مریاد اینه محیار در مقلبیت و ارشادیت اینه اگر امر به نحوی بود که و تمورد خود امره اسیان و تمورد خود امره عقوبت و, و کیفت داشته باشه اینه بهش بیان مولوی اگر اصیان و تمورد هم، به ما که عنوان تمورد امره این عقوبت نداشته باشی بهشون ارشادی فاره بین ارشادی و مولوی اینه پس و نظام امامر ارشادی من دو ظاهر به ظاهر حتی امکنه بسیعه بس افعل باشن ادبیاتشون ادبیات امره اما واقعیشون واقع اخباره حکمشون خوب حکم اخباره و یه تفر و آله حوامر داخل, داخل میشن در اصطلاح تقسیم قدیمی معروف برای هر در در سا داخل میشن در در سا عقل عملی اما عوامر شادی داخل میشن در عقل نظری امچه به عقل عملی ندارن اوامر ارشادی طبیعت اوامر ارشادی هرچی که میمیم اوامر ارشادی مراد اینه حتی در عوامر عجزا و شرائط توی از مرحوم نائمی و استاد قدس الله غیره قائل هستن اینها ارشادی سر و موردیت ندن مثلا فرموده لاسوسل فیوه برای مالایو کل لحم در پوسته حیوان غیر محکول لحم هر آنگوش نماز نه این اگر شما اصیامی کردید و نماز خوندید به خاطر این اصیامتون کیفر نداره. وقتی تو پوست حیوان خرابوش نماز خوندید شما شللا نمیزنه تو پوست حیوان حراموش نماز خوندید. این خودش کیفر نداره. شما اگر شلا بودن نمیزنه چون نماز نمیگی چون نماز باطله. این یعنی ارشاد است به بصلان نماز، ارشاد است به جزئیات به مانعیات. این شارع در حقیقت وقتی بگه لاتو سلیفی ها ما نهیه اما اگر مخالفت این نهیه کرد اقویبت نذاره. نذاره این کیفر نداره این کیفر مالا اقویبت این نهی نیست مخالفت نهی نیست مخالفت, مخالفت امنی اگر که مخالفت کرد و در پوست حیوان حرام بورش نمازون نمازش باطله این لاتو سلیف ارشاد است به بطنان نماز اگر بعد قضاش از نمازوش از هر نمازن بعد در داخل وقت دومترگه کش municipality خود این به عنوان خودش چیز ندارد کیفر ندارد خودش یعنی اگر شما در پوست حیوان هران لونش نماستوندیم همیشنان نماستوندیم بعض دو مرتبه چند دیگر رو در لباس پاک مرتب خوبی نماستوندیم شما رو به قبضت چرا در پوست حیوان هران لونش نماستوندیم اون میدونرفته نداره این در تیجهش معامل نماز اونجا اگر گفت اقل استفاد همی که نماز نخون به خاطر ترک هر که اقام استفاد رو بخواهدی میشوند مرتبه بله، نه ولی این مسئله رو با خوب دقت کرد که مثلا باب مثال اگر گفتن عدس خیلی خوبه خوب آیه برنو زیاد میکنه این بحث رو باید ما در اصول بحث طرح بکنیم که اگر در لسانه نص دیگه اثر تکلیلی آمد آیا این ملازم است با سه باب که یک امر مولوی است یا نه بنابراین خب شما هم ببینید زوایای عمرکتون رو بگیرید خب حواویات گویا شاد شاید شاد حواویات همین تصور و ظاهرشون از چه خروشی شنرشون بقیده از این مذرشون حتی میدونم عوامر اشتاب دوا از طبیل ارشادی ها چون عوامر دیدن به الله شنرشون بقیده یه قد پس این بخش که عوامر ارشادی رفتی به ما نحنفیه ندارد عوامر ارشادی از قبید عقل نظری هم یعنی چی؟ یعنی طبیل کارش کشفیس این هست که شما در بدنتون مرضی پیدا شده یا بیماری وقتی این را هم بدونید که در اصطلاح ص بیماری رو بر حساب باز میکنن. این نیست که هر سید. مثلا ساعت تو مثلا که که انگش شیشون داشت آیا این بیمار هست یا بیمار نیست. پس این خودن انگش شیشون، اینا برنامه شد برای است که بدن انسان در حال بیماری البته این که حوز بیماری چیه بحث اططلای می داره و هم لیکن اینا میگن وقتی یک نوع اختلال نزاج پیدا شد یک خلال نزاج پیدا شد این خلالش یا بخاطر وجود میکروب یا خاطر فلا, فلا. شما که برو اون خلال دارویی مصرف بکنیم تا اون خلال رو از بین ببره یعنی میان نگاه میکنم فرض که مثلا فلان ویروسی در بدن شما پیدا شد میگه دارو مصرف بکن یعنی یک چیزی که خدا برنها یا در طبیعت مستحیم مس رفتون بیا همان قرار داده یا خیر مستقیماً خدا قرار دازه. در طبیعت خداوند متعال قرار داده مثل این جلوه های کلام به صورت شیمیایی و فرآورده شیمیایی سیال انجام میدن این میره اون ویروس رو از بین میبره این اشاره دوا اون رابطه بین اون خلص اون انواع خلل در بدن مختلفه مشهور بین تقریبا این ده نوع بیماری ها و موارد ما اون خللی که در بدن شما پیدا شده خیلق اون خلال داروی قرار داده حالا تفیل میگه اشقا به یه تو مریضی دواب خور این مولدی نیست در رواد از فیغمبر داریم الله علیه انزلت دا انزلت دواب خدا بیماری رو ترستازه دارو هم برش رستاده درمان هم برش رست الله علیه انزلت دا در بدن شما یک خلالی پیدا شد ولی ذا ما در بحث رو زند کردیم ظاهره دو آیه که در باب صبح خداون انسان رو به لحاظ روزه گرفتن به سه قسم تحسیم کرده صحیح و صالح این باز روزه بگیره مریض اون کسیست که در بدنش خللی وارد شده این قضا داره اصلا قضا تکلیق سه رسی رسمی هستی نه چون فوت صبح شده ولیزا اطماعی اصحاب اینست که اگر به خلاف گفته تشریف طبیع و تشریف خودش مریض بود به سختیان روز گرفت قضا باید بیاد قضا در باب مریض به خاطر فوت نیست خوب بقیق بکنی و اول روین کنتون مردان و اولا سفر فه ازتون من ایام اخر اصلا تکلیف ابتداعا قضاه نشون ماه رمضان روز نگرفت. لذا اونا مثلا اهل سنت گفتن که من کار میکنم مریضان و حراسطن فلمگرسون فیضتون گفتن مسافر روزه روز روزش درست اما ظاهرهای مبارکه این نیز ظاهرهای مبارکه نست مسافر روزه هم چون اینجا بحث فوت نیز ما فات ما فات نیز ظاهره نیز آیه مبارکه خب دقت رو کنه اصلا تکلیف مریض قضا. قضاست نه افتداعا روزه بوده روزه اگر قضا. چرا در رسول آقایی نیستیم چرا دیگه این رو توی با قضا نه خب در در در قسم و پس صحیح مریض مطیق مطیق رو در آیه مبارشه در مقابل مریض و صحیح قرار دازن مطیق یعنی کسانی که روزه رو به سخیل تحمل میکنن نمیتونن از یک طرف مریض نیستن از یک طرف خود مزاریشون به حال طبیعی خودش تحمل روزه نداره. مثل پیر مرد و هر انسانی پیرون جدیه لازم نیست این پیرمرد مرد مریض باشه انسان پیر مردیست خریمه هم سریعه است هست و میکروبی ویهیز گردنش نیست خطاب میخوره اما نمیتونه امسا که نمیتونه انجام از این در اصطلاح قرآنی مطیحه یا زنی که حامله ماه های هشتونه خب این مریض نیست آدم سلیمیه وجود هم یا شیر دادن برای زن این یک خلل در جسمش نیست این طبیعیه بود طبیعیست که زنی های داشته باشه. پس این مریض نیست به عنوان مریض حساب نمیشه اما مطیحه در این یکی خداوند متعال که به اصطلاح ما به زبان فارسی بگیم که جریمه اون چیز مالی به اصطلاح کرامت مالی یا کلیه یا بدل عربا بدل این رو بدل بده یعنی پول به جاش بده پس در یک اسمش وظیفه‌اش روز است در یک اسمش وظیفهش بازار در یک قسمش هم وظیفه ثبیه است فلاح برای ندیمه و لذا اگر ما باشیم و مخصص واردری ها که هم تثسیب داریم خاانما خیلی ملا میشن مثلا دوران بارداری, بارداری و دوران شیردهی تفرج این وارد خاان ها در دوران بارجهی بارداری یا شیردهی اع میکنند به خاطر مطی و قضا هم نداره فقط ک داره دا. و اگر فبال آ ی حال م میفهمند فتووا برای است که ازضا دو تا وارد در سری و سند و تیان، اگر این دوتا روایت نبود یا حالا اگر کسی به یک جهتی در این دوتا روایت خدشه که دار من این خواهدون بحثاش بشم وظیفه این کانوم ها فقط فدیه هم یه قضا نیم. و ما در محلشم که کنیم انصافه هم. این نظر خواهدی از قبط می از قدم های از خواب باوجود این روایت صاحب ففورزان عقیدش همینه که فدیه دارن اما قضا ندارن این زواهر کتابی همین که هر روزشون به اندازه یه پول 700 تا 50 گرم گرم دوم مثلا بدن عنوان فدیه دیگه قضا نداره اما فتوه اعجی که برای ماه همزان هم قضا بکنه اما زواهر آقای مبارکه اینه یعنی قضا هم و داره که در چیز در پیر که نه در زن باردا همون پیر, پیر چون زن واردار اینها یعنی به عبارت دیگه اگه بخوایم فنی تصوّب و کنی تو سر اون روایت برای زن باردار هم حکم مریض رو استثنا اون زن هم یعنی احتیاج تشخیص شده به احتمال هم حکم موطیه بابا رو. ظاهر روی اون که موطیه بله البته ظاهرا موطیه این دیگه. مریض نیست اما به هر حال من وارد این بحث‌هاش که چون بحثش خیلی اثر اندازه چون داخل خارج برای خانم‌ها خیلی مؤثره لیکن خیلن و اینجاش اینجا نیست اینجا حالا برگردیم به وحث خودمون ببینید ما وقتی میگیم اشاره طبیل وقتی میگیم اشاره دوا این اشاره به اینه یعنی به عواز دیگر اینکه و این هست. وقتی اینا همین نه نه خب راست باشید نسبت این مثلا من اشتباه نکرده باشم. کردیم ملاکات هست. دقت اشتباه کار در اینجا شده. ملاکات و آثار و مساله هست. لکن اون ملاکات برای اصول و به امر متناسب میشه و برای اینکه این به اصطلاح ملاکات تحصیل بشه برای تخلل امر میاد احوبت قرار میده همه جا ملاقات ملاکات هست گاهی اوقات ملاکات به جوی که اگر امر کرد باز تاثیر نداره امر فقط جنبه اخبار داره جنبه ارشاد داره جنبه روشنگری داره بیا مثلا عدس بخان یکم آید آی بدن تون زیاد میشه لذا این بحث رو ما همیشه داریم که آیا چه رابطه هست به زیاد شدن ویتامین آ و عنوان استحباب استحباب یعنی چی؟ یعنی اطاعت خود این امر سواب داره یک درجه بزنیدن در دنیز. این بحث ها البته نشده این توی حوضای ما نشده اما اینا بحث های اساسی کاره این نصلاف تنها انفرش رو آلمون کرد لیکن همین صلافه اگر نخون جزا داره وجود جزا او رو از ارشادی جدا میکنه. پس قول طبیب مثلا اگر گفت که من مثال گفت مثلا اقره الحمد فی صلافه اگر از این رو ما مولدی گرفتیم معناش اینه که اگر حمد نخون اصلا او کلاغ هم داره و رو بعد دنها نماز با هم بخونه حندی به نماز بی هم خون نماز با لباس سال این خون باز دو مرحله نماز با طاهر خون همون خون در نماز و لباس نجس ال هم عقوبت داره این میشه موردین اگر عقوبت ندیم میشه ارشادی پس معیار رو این قرار بدیم هر جا مخالفت امر و تمرذ از امر و اسیان امر مستل یعنی موضوع شد برای یک جزا و یک کیفر این اسمش میشه مولانی هر جا موضوع نشد اسمش میشه ارشادی و در این جهت فرده نمی کنه امر مولانی ممکنه ظاهرش به سیغه افعال باشه یا به جمعه خبری باشه امر ارشادی هم فرده نمی کنه ممکنه به ادبیاتش و اسطورت موزیما یا تعبیر خانومیش به صورت نحی باشه یا امر باشه و یا به صورت فرسون بینید که اخبار باشه اینا دو تا واقعیت واقعیت یعنی در وعای اعتبار قانونی است اشتراب دبا تلیب اینطور که مرمون وستاد اینجا این اصلا از محل بحث خارجه من شون این بحث لطیفه پس مثال اشاره دبا که ایشون دوست دونت در این کتاب در این بحث به کار بردن این مثال از مانحنفی خارجه اصلا جای بحث نیست بعد مرمون استاد و مرمون نایینی به از علمو متعباز این نطفه شدن که چون اطلاق نصف به تغییر امر نسبیه ممکن است یک کلام از یک لحاظ اطلاق داشته باشه از یک لحاظ اطلاق نداشته باشه اشاره کردم به اون نظار معروفی که بین فوقهای اسلام هست البته در فوقهای هر سنان به نظار اقوالشون بیش از ماست اقوال ما اینقدر زیاد نیست ذهنم الان نمیاد اینقدر اقوال زیاد باشه. و اون مورد معروف ایست در بابه احساس سیده با سگ که نجی سلعینه خب آرون بحث های روایت هم از پیرانبرم بردرش هست بردرش هست, هست امه علیه و اونسلام مسئله سگ خب که مثلا امراه احسام سیده سگ و چیسته چیزیو بده چیکار بکنه چیکار بکنه منجول از بحث هایی که دارن اگر سن رفت به طرف آقوم با مثال مخوام بگم. یه دفع گردن اون رو میگیره و خشار میده فرص کنید مجروحش میکنه خون ازش میاد اینقدر خون میاد تا اون آبوب مثلا میگیره یه دفع گردن رو مثل انسانی که خفه بکنه اون رو خفهش میکنه یه دفع فرص که میزنه شکمش رو با دهنش پاره میکنه خونش میریزه میگیره آیا تمام اینا حلاله؟ هم فکلوم ما هم سکنه علیکا آی مبارکه اون نخورید از حیوان نشون سگ‌ها چلاغ معلله معلمه سگ نه علیکم از او بخورید مثلا ایده از اهل سنت گفتن حتما اگه گلوش گیره این گلوش پاره قاره کنه خونش بریزه و الا گلوش مخنوق شد خفه شد این دیگه نمی‌خوره حالا روایت اون شو رو بحث رو باید هم یا باید حتما از گلو حیوان بگیره از پاچه حیوان بگیره یا شکم حیوان بگیره قاره پا خون آمد مرده اون به اصطلاح یه حلال نمیشه خب یه بحث اینه من رو مستاد میفرماید ممکن است بگیم اصلاح دارایی دواره فکر کلوم ما امسک نهالی این آیه به این لحاظ اصلاح داره هر نهری انسان بود خفش کرد گرفتش که از اون گلوش مجبور کرد کمیش مجبور کرد کلوم ما امسک نهالی شامل تمام این حالات میشه و اما اگر شک کردید که این بحثم دارم تصابقه این بعض از این صورت در روایت خود آمه آمده اما این یکی در روایت آمه نیامده اون که اگر فرض این دندانشه یا چنگالش سک کرد تو بدن حیوان سگم که نجسل اینه یا تو گلوه حیوانه تو بدن حیوان آیا محل دندان یا چنگال رو چنگ شد چنگال شد باید شرس یا نه آیا است یا نه از دهی از علماء و, و فرق اسلامی تمس و به اطلاق آیا آیه فهم کلوم ما یعنی وقتی حیوان یک چیز را یک حیوان رو شکار کرده شما از اون بخوریم یک آغورو شکار کرده از بخوریم کلوم ما یعنی این که هم هست جواز را یعنی تضیئه واقع شده تضیئه واقع شده کلومه موثق نداره گفتن این معنیش اینه که اختیار به شستن نداره کوی کوئی واضحه این آیه مبارکه از این لحاظ دیگه اطلاق نداره از لغز اول اطلاقش واضحه ناینی هم داره اختصاص اما از لحاظ دوم اطلاقش واضحه نیست چون آیه ناظر نیست به اینکه آیه نجسه یا نجست نظر به این جهر ندارد درمه حیثیت نیست آیه به اون لحاظ اطلاعش خوبه از هر جای حیوان گرفت گلوش گرفت خفه کرد خفه نگرد واقع از نظر در باید این حکمش خوبه اما به لحاظ نجاست و عدم نجاست نه همین استدلاع هم در ازده از اهل احرس سنت آمده و از که از اجایب این که خب انسان واقعا احساس میکنه این مسئله محل اقتلاس و خداوند متعال در آن کریم اجازه دارن پاهزن ما در سنت طبیل بشین نقطه های نجیس هست علمای سنت به شدت اقتلاف دارن شاید ادهه کمشون قائلا که نجیسه میز پاکه میشه خورد ولو دندانشون ایوان توی گوشت اون سه بیرد شکار کرد. ازده ای کنم که نجسه و باید اون رو شست ازده ای کنم که نجس از تا شست لیکن برداشتن همش کردن بر ولوغ اینا کرد در اینا ولوغ سگ در ولوغ سگ در گذاشتن اشاره کردیم تنها موردیه که مالی داره غیر ازار و آب یک بارم با خاک. در روایات ما سه بار یک بارش با خاکه در روایات امنه هفت بار یک بارش با این از اون میگه که حل نمیشه از اختلافات نیست که ما واسه میخوام همش حلمونی جی میذاریم در... از این حرفای چیز نذاریم چون اون رو پیغمبر از پیغمبران به صدا نمی تو ما داریم صلا این هم نمیشه اونها به در دسته از به جایی رفته ده نمیشین بحث اختلاف ما با سنیا تو این مسئله حساس به جایی رفته ده نمیشون. پس ادهی از اهلستان نرگفتن پاکه ادهی گفتن نجسه یک بار شسته دشه کافیه ادهی گفتن نباید هفت بار بشوه یک بار خاتمال یک بار خاتمال شیش بار بشوه ادهی شانون گفتن نه اگر کار میکنه اگر به گوشت خورده خیلی خوب اما اگه زرد تو رنگ رنگ هیوان که خون در جریان داره این اصلا بر اثر جریان خون تمام بدن حیوان نجس میشود قابل خوردن نیست همه دور بریز بود این اصلا پاک نمیشه این هم رأی سوم و چهارم یه رأیی هم بر این که نه اصلا شستن هم واجبه نداره مثلا اگر دندان زده یا چنگال داده بیا حیوان اون مردی که مثلا عمق دنجانش مثلا 1 سال 2 دو سال تو دوربر اون مردا اون مردات با دوریه بشه دور انداخته بشه اصلا این قابل پاک شدن و طهارت اینا نیست با حفوار و شیشوار و با خاک اینا پاک نمیشه اصلا باید کندل بشه. غزرت این عقوالی است که علمای اهل سنت منم استاد بخاله بفهمم اینکه این اسلام منعرض نمیشه چون در مقام بیان از این جهت عصر حضور تشریف یه مقدار کیگاه یاد حالا فراهم خودمون چون ناامید این مسئله این بزرگوار ها حضرت بزرگوارو وصولاً دیگه نمیشه خیلی آسان بشه اشکال کر اشکالی که نه سوال مثلا اختراع میشه یه حالا اینکه در ذهن این حبیب با و هست این اصلاح به خاطر نجات اصلاح مقامی است اصلاح لفظی نیست بحث ما تو اصلاح لفظیه به نظرم اشتباهی اعلام پیش آمده. هست کردیم در همه عوائه اصولاً بحثه البته در کتب اهل سنت در شیعه در سونیا، تا مخصوصاً پرسته مثلاً در همی کتاب شیل سنیا هست چند از میگه اطلاق طریق و مرادش از اطلاق اطلاق مقامی نیست، نه اطلاق لفظی هست کردیم اطلاق دایی اطلاق لفظی هست مثل جعنی به ماهی که تمثب کنیم برای انواع ما بایی قسم اطلاق اطلاق مقامی لفظ نداره که به لفظش اطلاق تمسته که به اطلاق لفظ حکم در حقیقت اطلاق داره من لفظ رو کنی مثل که عرض کردیم امام می فرماید مثلا شیش تا هفت تا درب کشیدی از چه پاک می شود خب چاخ پاک شد خواهی نخوایی پاک میشه. شود اله باید در می تواند اون آب که میکشیدیم با боль Lahab See مگذیده دیگه امام از این که و این که امام میفهمد فرماید این اصلاق اصلاق حکم در办ه اصلاق لفظی نیست امام می, اصلاح اصلاح می, امام می که آب چه آب مخبت می شه اصلاحی هم ملازمه. ملازمه اون در پاک میشه اون تناویی که باشه اگر از تو آب چه عبت میشه. شه که تو لابه چهام دیخLET پاس می شه دوره بروا لابه چهام ن دوربر لده ای شاه هم پاک میشه این رو اصطلاح هم اصطلاح به اصطلاح مقامی میگیم کلوم ما امسَكْنَ علیکم. این کلو اینشون ما خواهیم به اصطلاح امسکنه این امسکنه به لحاظ مکان حیوان یعنی مثلا انسکن علیکم از بلوی حیوان از دست حیوان از پای حیوان مِمَا اون میشه به اطلاق امسکن تمسک کرد. بگیم هر جایی که حیوان گیره، هر جایی که سگ گیره. بخورید از اون جاهایی که سگ یا حیوانهایی حیوان‌های مثلا سگ برای شما نگه داشته شکار کرده. این مم ما هم وقتی حالت به حیوان به اعضاء بدنش بزنیم میشه بگیم گلوش گیره، دستش گیره، پاش گیره، شکم گیره. اما این که اون قسمت پاچه یا پات این از لوازم یعنی وقت گفت کلو و مح... دفر موز این اصل شما باید باشد سن موضع باشه و در مقام زیانم هست و محله اصطلاح هم هست پس این کلو معناش این است که او پاکه این از تمسط نکردیم به یک چیز لفظی نه هیئت کلو تمسط کردیم نه به اصطلاح ماده کلو که عقی باشه تمسط کردیم به و غورت یعنی آده هم این حیوان با دندانش با چنگالش به این آهو بردن آهو فرو میره اگر نجس باشه آه نگرشون توسط به اصلاح کلوز یعنی در کلوز قید نزده مگر نظر اولاقشون باشه این باشه و قید نزده این معنیشی نیست که باز باید مباشرتن این اصلاح داشته شده. حالا دا؟ فرض که مثلا گوشت آهو رو اولای میاره میپذه بازم کلوز سه بحث نجاست به نظر من اطلاق لفظی آیه نیست اطلاق مقامیست نه اطلاق لحظی حالا مگر ایشون میگن اون چیزی که در کتب اصول اصلاح بعد اهل سنت تبیر به اطلاق کردن اون اهل سنت گفتن پاکه تعبیر به اطلاق کردن از کنید در کتب و اصول خیل خیلی مواد نسان هست که تعبیر به اطلاق میتونم که مرادشون اطلاق مقامیست تو خود همین کتاب شرلونه که اگر تذیرستو فرمه خیلی جهاز که اطلاق ضرینی میگه مرادش خیلی شادن جهاز های این مرادش از اطلاق ضرین اطلاق مقامیست نه اطلاق لفظی اصلا ولزا زیادی از احل سنت قائل به نجاستن با وجود آیه که اصلا قائل به اطلاق نیستن با این که دوارت هم نردن بعد حال مقروم آرکوی میخواد این مثل بفرمایم شاید مرادش باشه که اطلاق لفظی به اطلاق مقامی و در مقام بیان باشه خب این حرف نیست اگه مراد این باشه این یه قسمت کلام ایشان یه قسمتی از کلام دوم ایشان یعنی کلام اولی که ایشان گفتن که این آیه اطلاق داره مثلا گروه حیوان گرفت دست حیوان شکم حیوان این خیلی واضح نیست اطلاق آیه خیلی واضح نیست از ایشون قرینه سر ایشان توضیح داده میشه این همون بحث اساسی بوده که بین مثلا شیعه ها غالبا از یک طرف به اهل سنت بوده اونا غالبا هم که به این اطلاقات میکردن و از طرف بحث این بود که آیات مبارکه در اصل تشریع هم. حتی به اون جردن نظر نداده فقط آیات مبارکه میخواد بگه شما عادتا وقتی که میخواید حیوانی رو بخوریم سرش رو میبوریم خون همیش میاد بعد اون هیوانی حالا به شما سیدم میکنید با سیدم اشار نداره بکنید این اصل تشریح سیگه یعنی شما میتوانید حیوان رو با سید تسکیه بکنید فکلو این امر نیست اون معنا یعنی یزوزو از تسکیه تو به سید اما حالا این تسکیه سگ باز گلو حیوان رو یا شکنه حیوان رو پاره بکنه یا دست ایوانه بگیره پای ایوانه بگیره این دلالت نه. اصلا ناظر نیست اگر هم در روایات چیزی آمد نیمیگه روایات آمده تقیید داره لذا به ذهن بنده کالا بعد توضیح داشت خواهم کرد آیه نه به لحاظ اول اطلاق لفظی داره نه به لحاظ دوم اطلاق محامی چرا؟ چون این آیات که به تغییر بنده به منزله قانون اساسی هستن ناظر و افر تش حالا حیوان خفه کرد حیوان مثلا خودش میذاره که اگر تک خودش انداخ رو حیوان سگ چنگینی ام بود اون آهوی بیچاره از ذور این تگ مرد نه خفه شده نه خرسون اینکه پاره کرده که نمیشه نه گلوش پاره کرده نه خون ازش اومده نه خفه شده از تنگی این تگ اون دیو جان دارد خب دارن که نمیشه خورد این این با... ولو هم امسکن میگن هم سرو نمیکنه نمیشه خورد روازی هم دارم به ذهن هم این در حیرت نمیشه که این تقیید کتابه اصلا کتاب نازر به اینجا نیست نازر و اصل شما میتوانید از راه سی اوشت رو کنید، حیوان رو تسکیه این نازر به این مطلب پس نه اطلاق اولیش ثابت رو نظر ما و نه اطلاق دومیش. اگر که اطلاق اولیش به لحاظ اماکن بدن حیوان اطلاق لحظی و به لحاظت تهارت و نجاست اطلاق مقامی هر دو اطلاق به نظر ثابت نیست سالالله علی و محمد و <تصفيق>